خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم. شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید، حتما از دیدن این کتابهای خطی لذت میبرید. بله، هم این کتابهای خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند. بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می می‌رویم. مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان میآید. در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسی درمی شده را ببینید. چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است. شهر تاریخ، هنر و صنعت. موزه تاریخ طبیعی هم دارد. بله، در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. در کدام موزه می آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ در موزه هنرهای تزیینی اشیاء دوره اسلامی را می مشاهده کنید آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ شهر کاشان ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم.